حکایت جوانی چوست لطیف خندان شیرین زبان در حلقی اشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی قم نیامدی و لب از خنده فراغم. روزگاری بر که اتفاق ملاقات نیفتاد بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خواسته. بیخ نشاتش بریده و گل هوس پژمریده پرسیدمش ای و چه حالت است گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم ماز از سبا و شیبو غیر لمدیم و کفا به تغییر زمان را چون پیر شدی، ز کودکی دست بدار، بازی و ذرافت به جوانان بگذار. ترب نو جوان ز پیر مجوی، که دگر به رفته به جوی، زر را چون رسید، وقت درو نخرامد چنان که سبزه نو، دور جوانی بشد از دست من، آق و دریغان زمن دل فروز، قبط سرپنجه شیری گذشت، راغزی مکنون به پنیری چویوز، پیرزنی موی سیاه کرده بود، گفتمش ای مامک دیرین روز، موی به تلبیس سیاه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کو